های ایرانی نوشته سید ابوالقاسم انجوی شیرازی ارائه شده توسط کانال تلگرامی هزار افسان داستان های سوتی ای صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده زهرا ستارزاده. زاده ازاد ابراهیم و فتنه خونریز یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچکس نبود زمان های قدیم یه پادشاهی بود که با هر کی ازدواج میکرد بچه دار نمیشد پادشاه همینجوری جاش قصه میخورد که یه روز جای نمیبینه که موهاش سفید شده و صورتش چین و چروک برداشته آهی میکشه و به وزیرش میگه ای وزیر بینظیر عمرم داره تموم میشه اولاد پسری ندارم که بعد از من صاحب این تاج و تخت بشه نمیدونم باید چیکار کنم وزیر میگه ای قبله عالم من یه دختر دارم اگه مایل باشین اونو به عقد شما در بیارم شما هم رو نیاز کنین و به فقرا زر و جواهر بدین تا شاید لطف خدا شامل حالتون بشه. پادشاه با دختر وزیر ازدواج میکنن و بعد از نه ماه و نه روز خداوند به اونا یه پسر میده و اسمشو شاهزاده ابراهیم میذارن. بعد از شیش سال شهزاد ابراهیم رو به مکتب میفرستن و بعد از اون بهش تیراندازی و از سواهی رو یاد میدن. بعد از مدت کمی هر دوتا رو خیلی خوب یاد میگیره. یه روز شاهزاده ابراهیم به پدرش میگه پدرجان من میخوام به شکار برم. پادشاه بعد از اصرار زیاد پسرش بهش اجازه میده. میره و میره به در قاری میرسه میبینه یه پیرمردی نشسته و یه عکسی تو دستش گرفته و داره گریه میکنه. شهستاد ابراهیم جلو میره و میپرسه این عکس مالکیه چرا داری گریه میکنی؟ پیرمرد میگه ای جوان دست رو دلم نذار شهستاد ابراهیم میگه چرا به هرکی میپرستی قسمت میدم که راستشو به من بگو؟ وقتی شهستاد ابراهیم قسمش میده پیرمرد میگه ای جوان حالا که منو قسم میدی خونت به گردن خودت من این قصه رو برات تعریف میکنم این عکس عکس دختر فتنه خون ریزه. همه عاشقشن ولی هم اون هیچکی رو به شوهری قبول نمیکنه و هر کیم هم به خواستگارش میره اونو میکشه اون دختر پادشاه چینه شاهزاده ابراهیمم وقتی این عکسو میبینه یک دل نه هزار دل عاشق دختره میشه و با یه دنیا غم و اندوه به خونه میره بدون اینکه به پدر و مادرش چیزی بگه و بندیل سفرش رو میبنده و راهی شهر چین میشه. شهر چین که میرسه کوچه ها رو میگرده و میگرده نه هم ذهنش میاد که باید دست به دامن یه پیرزن بشه شاید بتونه راه ای پیدا کنه. خلاصه تا اصر همینطور میگرده تا اینکه یه پیرزنی رو پیدا میکنه جلو میره و بهش سلام میکنه پیرزن یه نگاه به ابراهیم میکنه و میگه ای جوون اهل کجایی ابراهیم میگه ای مادر من تو این شهر غریبم و جایی رو ندارم مادر بهش میگه که ما یه خونه ای داریم اگه سرمون منت بذاریم میتونی بیای اونجا شاستاد ابراهیم همراه پیرزن به راه ناگهان ابراهیم یهو وسط راه میزنه زیر گریه. پیرزنه میگه ای جوون چرا داری گریه میکنی؟ ابراهیم میگه ای مادر دست رو دلم نذار پیرزنه میگه تو رو خدا بگو ببینم چی شده شاید بتونم کمکت کنه. ابراهیم شروع میکنه و میگه من یه روز یه پیرمرده رو دیدم که تو دستش عکس دختر فتنه خوندیز بود. از اون روز تا حالا عاشقش شدم. الانم که به اینجا اومدم میخوام ببینمش. پیرزنه میگه ای جوون به جوونیت بکن مگه نمیدونی که هر کی به خواستگاری اون دختر میره دختره میکشدش ابراهیم میگه مادر میدونم ولی چه کنم اگه تو هم کمکم نکنی من میمیرم پیرزن میگه که حالا تو برو بخواب تا فردا صبح خدا کریمه فردا صبح ابراهیم مشتلا به پیرزن میده پیرزن وقتی تلا رو میبینه میگه که این یکی از شاهزاده هاست ولی آخر دلم به حال این جوانیش میسوزه باید یه کاری کنن بعدش مهر رو تسبیح بر می داره و یه از تو دستش میگیره و راهی بارگاه دختره میشه درو میزنه و یکی از کنیزا درو باز میکنه دختره میگه که پیرزنه رو داخل بیاری وقتی پیرزنه میاد میگه که ای پیرزن تو کی هستی اینجا چی میکنی پیرزنه بهش میگه دخترم من از کربلا میام و زائرم اما را همو گم کردم تا اینکه رسیدم به اینجا همین همینطوری پیرزنه سر صحبت رو با دختر باز میکنه یهو بهش میگه که دخترم شما با این همه کمالات چرا تا الان ازدواج نکردی دختره وقتی این حرفو میشنوه یهو خشمگین میشه و یه سیلی به پیرزنه میزنه پیرزنه هم از حوش میره. بعد از اینکه پیرزنه به میاد واسه دلجویی که شده دختره بهش میگه ای ماده چون این کار یه سری هست. یه شب خواب دیدم که به شکل آهوی ماده در اومدم و در بیابان میگردم. یه یه آهوی نر پیدا میشه و میاد سراغ من و با من رفیق میشه. خلاص همونطور که میچریدم پای آهوی نر تو سوراخ موش میره و هر کاری میکنیم که پاشو از اون سوراخه بکشه بیرون اما نمیتونه من یه را رفتم و آب در دهن کردم و آوردم و ریختیم تو سوراخ موش و خلاصه آهوی نر رو نجات دادیم کمی که راه رفتیم این بار پای من تو سوراخ گیر کرد آهوی نر رفت تا آب بیاره اما برنگشت و من از خواب پریدم از اون روز با خودم عهد کردم که هر مردی که به خواستگاریم اومد اونو بکشم چون میدونم که همه مردا بیوفان پیرزن این حکایت رو میشنم و راهی خونه میشه به ابراهیم میگه که ابراهیم من قصه دختر رو شنیدم تو هم قصه نخور که یه راه نجاتی پیدا کردم شاهسانده میگه حالا باید چیکار کنم؟ پیرزنه میگه یه حمومی درست کن و دستور بده در رخکن حمام تصویر دوتا آهو یکی نر و یکی هم مادر رو بکشن که دارن میچرن. در مرحله دوم تصویر اون دو تا آهو رو بکشن که پای آهوی نر تو سوراخ مش رفته و آهوی ماده آب آورده و تو سوراخ ریخته. در قسمت سوم هم نکشی می که پای آهوی ماده تو سوراخ رفته و آهوی نر هم واسه آوردن آب به سرچشمه رفته و سیاد اونو باتیر زده. وقتی هم که هموم درست شد چه به چه نه خواهی دختره به هموم میره و این اکسا رو میبینه. خلاصه شاه ساده اون هموم رو میسازه و بعد از اینکه که تموم شد آوازده اون همون تو شهر چیم. میچرخه و همه میگن که یه شخصی از بلاد ایران اومده و یه همون درست کرده که لنگش تو دنیا نیست. وقتی دختر اینو میشنوه تصمیم میگیره به همون بره. وقتی به همون میرسه و اون اکسا رو میبینه آهی میکشه و تو دلش میگه ای بای آهوی نر تقصیری نداشته و تو دلش نیت میکنه که دیگه هیشکی رو نکشه و بگرده و جفت خودش رو پیدا کنه. از این پیرزنه به ابراهیم میگه که ابراهیم امروز دختره به همون اومد و اون اکسا رو دید. الان باید یه دست لباس سفید بگیری و تنگ کنی و بری سراغ بارگاه دختره و سه بار بگی آهون وای آهون وای آهون وای بعدش فرار کنی روز دوم یه دست لباس سبز میپوشی و میری همون جملات رو تکرار میکنی و بازم فرار میکنی و روز سوم یه دست لباس سرخ میپوشی و میری و همون رو تکرار میکنی ولی این بار فرار نمیکنی تا تو رو بگیرن وقتی تو رو گرفتن و پیش دختر بردن دختره از تو میپرسه که دلیل کاراتو بهش بگی تو هم بگو یه شب خواب دیدی که با آهوی مادهی رفیق شدی و به چرا رفتی پای تو سوراخ گیر میکنه آهوی ماده تو رو نجات میده و وقتی پای آهوی ماده تو سوراخ میره تو میری که آب بیاری و نجاتش بدی تو رو سیاد با تیر میزنه و موقع از خواب میپری و تصمیم میگیری که شهر به شهر و دیار به دیار جفت خودتو بگردی و پیدا کنی شاه ابراهیم این دستور رو از پیرزن میگیره و همون کارا رو انجام میده تا اینکه روز سوم اونو میگیرن و نسته دختره میبرن دختره وقتی اونو میبینه یه دل نه ست دل آشاق شاهزاده میشه ولی با خودش میگه که آخه من چجوری باید عاشق یه بچه درویش بشم اما بعد از مدتی دلو به دریا میزنه و میگه ای بچه درویش این کارا چیه که میکنی؟ چرا سه روز این حرفا رو میگی و فرار میکنی؟ شاهزادهم بقیه که پیرزنه یادش داده بود رو بهش تعریف میکنه دختر آهی میکشه و از هوش میره بعد از مدتی که به هوش میاد میگه ای جوون خدا نظرش به ما دو نفر بوده. منم از این همه خون ناحق گریختم واقعا پشیمونم و حالا هم میخوام که جفت تو بشم. من گمان میکردم که مردا بیوفان اما نمیدونستم که آهوی نر رو سیاد با تیر زده. خلاصه دختره از شاهزاده میپرسه که کیه و از کجا اومده؟ اونم براش تعریف میکنه که پسر پادشاه ایرانه و اسم شاهزاده ابراهیمه. همون روز دختره یک قست دیرو با یه نامه پیش باباش میفرسته و میگه که میخواد عروس بشه. پدرش اولش تعجب میکنه و بعدش دستور میده که یه عروسی مجللی رو براشون بگیرد. از یه طرفم پدر ابراهیم چون این تنها پسرش بود شهر به شهر و دیار به دیار داشت دنبال ابراهیم میگشت همون روزی که عروسی اینا بود پدر ابراهیمم میرسه شهر چین و وقتی میبینه همه دارن به سمت بارگاه پادشاه چین میرن ازشون میپرسه که چی شده چه خبره چرا همه اونجا میرن و یه نفر بهش میگه که امروز عروسی شاهزاد ابراهیم پسر پادشاه ایران با دختر فتنه خوندیزه و همه میرن عروسی اونا. وقتی قلندر وارد قصر میشه ابراهیم که میبینه فوری پدرشو میشناسه و میره و بغلش میکنه و دستور میده که اونو به همون ببرن و یه دست لباس پادشاهی تنش کنند وقتی قلندر حاضر میشه اونو نزد پدره دختره میاره و دوتا پادشاه همدیگر رو بغل میکنن و خلاصه هفت روز و هفت شب برای اینا عروسی میگیرن. بعد اون شاهصاد ابراهیم دست همسرشو میگیره و با هم راهی سرزمین ایران میشن. وقتی به ایران میرسن پدر ابراهیم ابراهیم رو به عنوان پادشاه ایران معرفی میکنه و از اون بعد شاهزاد ابراهیم میشه شاه ابراهیم